حکایت در جامعه بعلبک وقتی کلمهای همی گفتم به طریق وعظ با جماعتی افسرده دلمرده ره از عالم صورت به عالم معنی نبرده دیدم که نفسم در نمیگیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمیکند دریق آمدم تربیت ستوران و آین داری در محلت کوران، ولیکن در معنی باز بود و سلسلی سخن دراز. در معنی این آیت که و نحنو اقرب و علیه من حبل الورید، سخن به جایی رسانیده که گفتم دوست نزدیک تر از من به من است، وینت مشکل، که من از وی دورم چه کنم با که توان گفت که او در کنار منو من محجورم من از شراب این سخن مست و فوزالی قدح در دست که رواندی بر کنار مجلس گذر کرد و دور آخر در او اثر کرد نغری چنان زد که دیگران به موافقت او در خروش آمدند و خامان مجلس به جوش گفتم سبحان الله دوران با خبر در حضور و نزدیکان بی بسر دور. فهم سخن چون نکند مستمع قوت طب از متکلم مجور. فسخت میدان ارادت بیار تا بزند مرد سخنگوی، گوی.